سلام و درود من فرزان فرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید شمایی که صدای من رو میشنوید امیدوارم که حالتون خوب باشه من فرزان فرامرزی هستم، روزنامه نگار، اهل شیراز و ساکن آمریکا. بعد از معرفی خودم بریم سراغ معرفی پادکست. پادکست خودمونی. حالا چه گذاشتم خودمونی؟ برای اینکه میخوام خیلی خودمونی و راحت بدون حرف‌های قلم به سالنبه با شما در مورد موضوعات مختلف، از سیاست گرفته تا ورزش و حتی موضوعات خیلی خودمونی صحبت کنم. این رو هم بگم که اینجا قصد گفتن اخبار ندارم. قسم صرفاً تحلیل خبر هم نیست. اما هم خبر داریم هم تحلیل خبر و البته بیشتر از خبر و تحلیل خواهیم داشت من قبلا هم این کار رو یعنی خودمونی صحبت کردم با مخاطب رو در قالب وبلاگ انجام دادم زمانی که از ایران به قصد ترکیه حرکت کردم تصمیم گرفتم یک وبلاگ درست کنم و هر کاری رو که می‌کنم بنویسم البته قصد اصلی من آگاهی رسانی در مورد وضعیت پناهنده های ایرانی در ترکیه بود و اینکه شرایط پناهندگی اونجا چطوری هست؟ مصبه به چه صورت چه کسانی واجد شرایط هستند و اینگونه مسائل. وقتی که خودم قصد رفتن کردم اول به رفتن با هایاس فکر کردم. یه توضیح کوچیک در مورد هایاس بدم، هایاس سازمانی است که خدمتش به جنگ جهانی دوم میرسه و در زمینه اسکان اقیت مذهبی در آمریکا از طریق کشور اتریش فعالیت میکنه. های مذهبی که در کشور خودشون مشکل دارند از طریق این سازمان به کشورهای دیگه از جمله آمریکا منتقل میشن من هم به عنوان اقلیت مذهبی که قصد مهاجرت داشتم به هایاس فکر کردم خب هایاس یک سری خوبی ها داره و یک سری بدی ها. زمانی که مشغول تحقیق در مورد هایاس بودم خیلی مطلب در این مورد پیدا کردم و اطلاعات خیلی زیادی رو جمع کردم البته نمیتونم صحت تمام اون‌ها رو تایید کنم اما نسبت به ترکیه و اسکان در ترکیه اطلاعات خیلی بیشتری در مورد هایاس در اینترنت موجود بود. خوششانسی که من داشتم این بود که برادرم اون زمان روزهای آخر اقامتش در ترکیه رو میگذرم و من مورد اعتمادی برای من بود. یکم که به موضوع فکر کردم و البته وقتی به ترکیه رفتم متوجه شدم بازار شایه و اطلاعات غلط در ترکیه و بین ایرانی ها داغه برای همین تصمیم گرفتم در کنار نوشتن از کارهایی که به صورت روزانه انجام میدم در مورد پناهندگی و شرایط پناهندگی هم بنویسم این البته اولین تجربه وبلاگ نویسی من نبود من وبلاگ نویسی را از سال 2000 شروع کردم اما خب اکثر وبلاگ هام یا فیلتر شد یا به علت داشتن محتوای مجرمانه کلنگ پاک شد محتوای مجرمانه وبلاگ های من البته نوشتن از حقوق بشر آزادی و برابری برای همه بود. وبلاگ یاداشت های فرزان که مربوط به دوران اقامتم در ترکیه بود تجربه خیلی خوبی برای من بود جدای از بازدید کننده های نسبتا زیادی که داشتم اکثر افرادی که در شهر خودمون نفشهیر بودند، اون رو میخوندن بعضی ها مسقرم میکردن و بعضی ها تشویق اما چیزی که منو مصمم میکرد این بود که افرادی از ایران با خوندن این وبلاگ دید بهتری به ترکیه و شرایط پیدا می‌کنن. این ایده به من ایمیل می‌زدن و یا در فیسبوک منو به جمع دوستانشون اضافه میکردند. با خیلی از اونها هنوز در فیسبوک دوست هستم هرچند که هرگز هم دیگر رو ندیدیم. خب از موضوع خارج نشیم. چرا پادکست؟ در چهار سال گذشته عمده فعالیت من با رسانه های آمریکایی و محلی در شهر و دانشگاه هم بوده. و بیشتر در کار در تلویزیون دانشگاه و انجام ده. همیشه دوست داشتم که وبلاگ یادداشت‌های فرزان رو ادامه بدم و مثلا در مورد اوضاع کار و زندگی در آمریکا هم بنویسم. اما خب مشغله شغلی و درسی نمیذاشت. یکی از موضوعاتی که همیشه دوستانم در ایران در موردش سوال می‌کردن و می‌خواستن بدونن شرایط کار زندگی و از همه مهمتر شرایط تحصیل در آمریکا بوده. من همیشه سعی کردم که خوب و بد رو در کنار هم بگم، چیزی که در روزنامه به اون بی میگیم می‌گیم. بعضی وقتها هم در فیسبوک در مورد این موضوعات می نویسم و تعاریفانی می کنم و امیدوارم که با این پادکست بتونم با مخاطبای بیشتری ارتباط برقرار کنم و در حد توانم جواب سوالهای شما رو بدم. پس اگر سوالی دارید، حتما برای من بنویسید. یا اینکه می‌تونید سوالتون رو به صورت فایل صوتی برای من بفرستید و من هم اون رو پخش می‌ک من تا چند هفته دیگه فارغ و تحصیل میشم این نگفتم که من چه رشتهی خوندم رشتهی من ارتباطات جمعی با گرایش بر تولیدات رسانهی هست همچنین یک گواهی نامه در زمینه سینما و رسانه های دیجیتال هم در کنار اون خواهم گرفت فارغ و تحصیلی به معنای اوقات فراغت بیشتر نیست اما وقتی که درس و امتحان و تکلیف نباشه میتونم یک کمی از وقتم رو به کارهای دیگه بدم. اول تصمیم گرفتم که ویدیوهای هفتگی درست کنم اما خب تولید و تهیه ویدیو وقتگیرتر هست و کار بیشتری رو میطلبه. نکته دوم اینه که مخاطبی که شما باشی باید ویدیو رو نگاه کنی. یعنی جلوی صفحه مانیتور بشینید و چند دقیقه از وقتتون رو فقط به دیدن ویدیو اختصاص بدید. اما پادکست رو وقتی مشغول آشپزی هستید یا در حال مرتب کردن اتاقتون هستید هم میتونید گوش کنید. نکته دیگه این هست که با شرایط اینترنت ایران دیدن ویدیو ممکنه کمی وقتگیر و مشکل باشه اما فایل های صوتی معمولا ح تو با سرعت کم هم به راحتی اجرا میشن و من امیدوارم که بتونم به خاطر پای زیادی از ایران داشته باشم از همه مهمتر اینکه شما میتونید پادکست رو دانلود کنید و هر وقت وقت داشتید گوش کنید سعی خواهم کرد هر هفته چهارشنبه صبح به وقت آمریکا یک قسمت جدید برای شما داشته باشم زمان پادکست رو سعی میکنم در حد 10 دقیقه نگه دارم اما خب بعضی وقتا ممکنه یک موضوع زمان بیشتری رو بخواد من یک سری موضوعات رو لیست کردم که در هفته های آینده برای شما اجرا کنم اما خوشحال میشم نظر شما دوست عزیزی که الان داری صدای من رو میشنوی رو هم بدونم به من در فیسبوک پیغام بدید یا برای من ایمیل بزنید این قسمت یکم یک کتاحتر شد و بیشتر جنبه معرفی داشت منتظر دومین قسمت پادکست خودمونی در هفته آینده باشید زمنا یادتون نره که این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بذارید ممنون و خدا نگهدار